کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده جادوگر و خدمتکاراش در روزگاران قدیم پادشاهی سه پسر داشت اسم بزرگترین اونها زابو دوامی وازرا و, و سومی ایوانیچ بود در یک صبح زیبای بهاری پادشاه همراه سه پسرش در با قدم میزد و محو تماشای درختها بود بعضی از اونها پر از شکوفه و بعضی دیگه زیر سنگینی میوهها سرخم کرده بودند اونها در حال قدم زدن در باغ زیبا به قطع زمینی رسیدند که سه درخت عجیب در اون کاشته شده بود پادشاه لحظه‌ای به اونها خیره شد و بعد سرش با ناراحتی تکون داد و بدون اینکه حرفی بزنه از جلوی درخت‌ها رد شد پسرها از کار او سر در نیاوردند و علت ناراحتیش رو پرسیدند پادشاه برای بچه‌ها اینجوری تعریف کرد همیشه دیدن این سه درخت منو قصدار میکنه می‌کنه چون خودم در 20 سالگی اونها رو کاشتم. جادوگر معروفی که دونه ها را به پدرم داده بود، به او اطمینان داد که اونها به بهترین درختای دنیا تبدیل خواهند شد. عمر پدرم اجازه نداد که درستی حرفای جادوگر رو امتحان کنه، اما قبل از مرگ اون دونه ها رو به من داد و خواهش کرد اونها رو اینجا به کارم و ازشون خوب مراقبت کنم. منم اطاعت کردم. 5 سال بعد، بالاخره درختها شکوفه کردند و بعد شکوفه ها تبدیل به بهترین میوه هایی که من به عمرم دیده بودم شدند من به باقبون سفارش کردم که با دقت مواظب به باشه چون جادوگر به پدرم هشدار داده بود که اگر حتی یه میوه کال هم از یکی از درخت ها چیده بشه بقیه میوه ها فوری از بین میرند نشونه رسیدن میوه ها هم اینه که رنگشون زرد میشه من هر روز به میوه ها که لحظه به لحظه خوش آب و رنگ تر می شدند، خیره می شدم و هر کاری از دستم بر انجام میدادم تا همه سفارش های جادوگت اجرا بشه. یه شب خواب دیدم که میوهها ها کاملا رسیده شدند. من در حال خوردن یکی از اونها هستم و احساس میکنم خوشمزه خوراکی روی زمین را رو گاز زدم. به محض اینکه از خواب بیدار شدم با قبون رو احزار کردم و هظزار کردم پرسیدم آیا از دی شب تا به حال میوهها رسیدند یا نه؟ اما باقبون به جای جواب دادن به پای من افتاد و قسم خورد که بی تقصیره. او گفت که تمام شب از درختها مراقبت کرد ولی با این وجود انگار کسی با جادوگری همه میوهها رو دزدیده من خیلی ناراحت شدم اما باغبون رو تنبید نکردم چون به وفاداری او اطمینان داشتم ولی تصمیم گرفتم سال بعد قبل از اینکه میوهها کاملا برسند اونها رو بچینم چون پشتارهای جادوگر را باور نکرده بودم سال بعد من تصمیم خودم را اجرا کردم و همه میوههای کال رو چیدم اما وقتی یکی از سیبها را گاز زدم تل خوبت مزه بود و تا صبح روز بعد هم بقیه میوهها خراب شده بودند از اون سال به بعد من به وفاترین خدمتکارانم دستور می دادم که با دقت از میوهها مراقبت کنند اما هر سال درست یه شب قبل از رسیدن به هدفم، دستی نامرئی همه ها رو میچید و تا صبح روز بعد حتی یه سیب هم روی درختها باقی نمیموند. از اون به بعد من دیگه ناامید شدم و به درختها حتی نگاه هم نمی کنم. وقتی داستان پادشاه به پایان رسید، بزرگترین پسرش زابو گفت: "ببخشید پدر، ولی به نظر من شما اشتباه کردید. من مطمئنم که در سرزمین شما افراد زیادی هستن که میتونند در مقابل جادوها و دوست ها از این درخت مراقبت کنم من که بزرگترین پسر شما هستم از شما میخوام اجازه بدین امشب از درختها مراقبت کنم پادشاه قبول کرد با تاریک شدن هوا زاوو از یکی از درختها بالا رفت و تصمیم گرفت حتی به قیمت از دست دادن جونش از ها مراقبت کنه او چند ساعت مراقب همه چیز بود اما کمی پس از نیمه شب خستگی شدیدی به سراغش اومد و به خواب عمیقی فرو رفت. پسر درست وقتی بیدار شد که خورشید طلو کرده بود و همه میوهها ناپدید شده بودند. سال بعد وزرا دومین پسر شانسش رو امتحان کرد اما همون نتیجه قبلی رو گرفت. بالاخر نوبت به سومین و کوچکترین پسر رسید. با اینکه دو برادر دیگه از او بزرگتر و قوی تر بودند اما شکست اونها باعث نشد ایوانیچ امیدش را از دست بده او هم با تاریک شدن هوا از درخت بالا رفت ماه در آسمون میدرخشید و نور اون اطراف را رو روشن کرده بود به طوری که شاهزاده نگهبان میتونست به راحتی کوچیکترین اجسام رو هم ببینه دیمه های شب باد ملایمی شاخه ها را تکون داد همان موقع پرنده سفیدی که شبیه قو بود از آسمون پایین اومد و خودشو به پسر نزدیک کرد. شاهزاده فوری بالهای پرنده رو گرفت. ناگهان حیرت زده متوجه شد چیزی که گرفته بالهای یه پرنده نیست بلکه دستهای دختری بسیار زیباست. دختر در حالی که با نگاهی دوستانه به شاهزاده خیره شده بود گفت لازم نیست از میلیتسا بترسی. کسی که میوه های شما را میدوزید، یه جادوگر نبود. اما اون کسی که دونه ها را از مادر من دزدید و اونو کشت، یه جادوگر بود. مادرم در لحظه مرگ به من سفارش کرد که هر سال وقتی میوه ها رسیدند، همه اونها رو بچینم چون اونها حق شما نبود. امشبم هم میخواستم همین کار را بکنم، اما تو منو به زور گرفتی و من منو قاتل کردی. ایوانیچ انتظار روبرو شدن با یه جادوگر وحشتناک را داشت با دیدن دختری چنین زیبا جلوی روی خود متعجب شده بود. او در همون لحظه به اون دختر علاقه شد. اونها بقیه ساعت شب رو کنار هم نشستند و با هم حرف زدن و وقتی میلیتسا خواست بره پسر از او خواهش کرد ترکش نکنه. میلیتسا گفت خیلی دلم میخواست بیشتر کنارت بمونم اما یک بار وقتی خواب بودم یه جادوگر بدجنس دستی از موهای منو برید و همین باعث شد که قدرت او زیاد بشه و حالا اگه صبح بشه او منو اینجا ببینه عذیتم میکنه و شاید بلایی هم سرتو بیاره او بعد از گفتن این حرفها انگشتر الماسی را از انگشتش بیرون آورد و اونو به شاهزاده داد و گفت اینو به عنوان یادگاری از من پیش خودت نگهدار و اگه دیگه منو ندیدی گاهی به من فکر کن. اما اگه عشق تو حقیقیه بیا و منو در سرزمین خودم پیدا کن. من راه رو نشونت نمیدم اما این انگشتر تو رو راه خواهد کرد. اگه در دل تو به قدر کافی عشق و شجاعت وجود داره که به چنین سفری بیای قبل از انتخاب مسیرت در دو ها به این الماس نگاه کن. اگه مثل همیشه می درخشید مسیر مستقیم رو ادامه بده ولی اگه رنگ اون تیره شد راهت رو عوض کن و در مسیر دوم پیش برو. میلیتزا تعظیمی در برابر شاهزاده کرد و قبل از اینکه پسر فرصت کنه کلمه‌ای بر زبون بیاره در حاله از عبر فرو رفت و ناپدید شد. صبح شد و شاهزاده که چهره دختر یه لحظه از جلوی چشش کنار نمیرفت از درخت پایین اومد و مثل خواب زده ها راهی قصد شد. بدون اینکه بفهمه آیا ها چیده شده اند یا نه. چون تمام فکرش بیشه میلیتزا بود و اینکه چطور اونا پیدا کنه. به محض اینکه چشم باغبون به شاهزاده افتاد که به سمت قصر میره دوون دوون سراغ درخت ها رفت و وقتی دید همه های رسیده سر جاشون هستند، با عجله رفت تا این خبر خوش رو به پادشاه برسونه. پادشاه هم خیلی خوشحال شد و فوری به باغ رفت و به باغبون دستور داد مقداری از میوه ها رو بچینه. او آنها را خورد و متوجه شد به همون خوشمزگی هستند که در خواب دیده بود. بعد سراغ پسرش ایوانیچ رفت و بعد از تشویق و نوازش او پرسید که چطور تونسته از اون میوه های پر ارزش در برابر قدرت جادوگر مراقبت کنه. ایوانیچ کمی مکس کرده و چون دلش نمیخواست که کسی از ماجرای، واقعی خبردار بشه گفت که نیماهای شب یه زنبور بزرگ از میون شاخه ها به طرفش اومد و دور را برش بزبز کرد. او هم با شمشیرش حشره را دور کرد و این کار را تا صبح ادامه داد. و وقتی دیگه حسابی خسته شده بود زنبور همونطور که ناگهان ظاهر شده بود ناپدید شد. پادشاه اصلا به این داستان شک نکرد و از پسرش خواست که کمی استراحت کنه تا خستگی شب قبل از بین بره. بعد رفت و دستور داد به مناسبت از دست ندادن های خوشمزه جشن بزرگی برپا کنند همه مردم پایتخت به جوش و خروش اومدند و خود را در شادی پادشاه شریک کردند و فقط شاهزاده در جشن شرکت نکرد زمانی که پادشاه در مهمانی بود ایوانیچ مقداری طلا برداشت و سوار چابکترین اسب استبل سلطنتی شد و بدون اینکه کسی بفهمه به سرعت از اونجا دور شد صبح روز بعد همه متوجه قیبت او شدند پادشا خیلی ناراحت شد و گروهی را مأمور کرد تا همه سرزمین را بگردند اما فایده ای نداشت پس از شش ماه اونها به این نتیجه رسیدن که مرده مردست و در شش ماه دوم دیگه کسی چیزی از او به یاد نداشت و همه پراموشش کرده بودند اما در این مدت شاهزاده با کمک انگشتر با موفقیت به سفرش ادامه داده بود و هیچ اتفاق بدی براش نیفتاده بود بعد از سه ماه او به جنگل بزرگی میرسه که به نظر میاد تا به حال پای هیچ آدمی زادی به اونجا نرسیده و معلوم نبود که تا کجا ادامه داره شاهزاده میخواست از جاده باریکی که پیدا کرده بود وارد جنگل بشه که شنی یک نفر فریاد زد سر جوون داری کجا میری؟ ایوانیش برگشت و مرد قد بلند و بدقیافی رو دید که لباس کهنهای به تن داشت مرد یه چوب دستی کج تو دستش بود و روی کندهٔ یه درخت کاج نشسته بود او کاملا همرنگ صندلیش بود و به همین دلیل شاهزاده موقع رد شدن از کنار کندهٔ درخت متوجه او نشد پیرمرد پرسید کجا میری او گفت یعنی yani معلوم نیست که میخوام وارد جنگل بشم پیرمرد حیرت زده گفت وارد جنگل بشی معلوم تا به حال چیزی درباره این جنگل نشنیدی و میخوای با دست خودت خودتو به هلاکت برسونی. پس قبل از اینکه جلوتر بری به حرفهای من گوش کن. لازمه بدونی که در اماغ این جنگل تعداد زیادی ببر درنده و کفتار، خرس، گرگ، مار و حیوانات وحشی دیگه پنهون شدن. اگه من تو اصبتو ریز ریز کنم آتکه هاتونو جلوی درنده ها بندازم و هر صدتای اونها ی تکم نمیرسه پس به نصیحت من گوش کن و اگه جونتو دوست داری یه مسیر دیگه انتخاب کن حرف هایی پیر مرد شاهزاده رو به تردید انداخت یه لحظه به فکر فرو رفت که چی کار کنه بعد به یاد انگشتر افتاد به اون نگاه کرد دید مثل همیشه میدرخشه گفت اگه این جنگل از چیزی که میگن هم وحشتناکتر باشه برای من فرقی نمیکنه چون من باید از میون اون رد شم اون سوار اسب شد و به راه افتاد. اما دورگرد پیر چنان فریادی کشید که شاهزاده به کنار کندی درخت برگشت. دورگرد گفت واقعا برات متاسفم. اما اگه واقعا تصمیم گرفتی با خطرهای جنگل رو حتی حداقل بذار برای مقابله با این حیولاها راه حلی به تو نشون بدم. من این کیف پر از خورد نون و خرگوش زنده رو به تو هدیه میدم. چون دلم میخواد جونتو نجات بدم. اما باید همین همینجا بذاری. چون ممکنه درخت های شکسته پاهاشو زخمی کنن یا لابلای خاره ها و گیر کنه. وقتی تقریباً صد کیلومتر جلو رفتی، درنده ها محاصرت تو باید کیفو برداری و نونا رو بین اونها پخش کنه. اونها هریسانه به نونا حمله میکنن و وقتی آخرین تکی نون رو روی زمین انداختی، اصلا نباید وقت تلف کنی فوری خرگوش رو آزاد کن خرگوش وقتی که احساس کنه آزاد شده به سرعت شروع به دویدن میکنه و در ها هم اونو تعقیب تقیب میکنن با این روش میتونید سالم از جنگل عبور کنی ایوانیش از پیرمرد به خاطر راهنماییش تشکر کرده و از اسب پایین اومد کیف و خرگوش و برداشت و وارد جنگل شد او هنوز زیاد از دوست بدقیافه و پیرش دور نشده بود که صدای قرش و زوزه حیوونات از فاصله نزدیک شنید قبل از اینکه بتونه به چیزی فکر کنه متوجه شد وحشتناکترین موجودات روی زمین محاصرش کردند در یه طرف چشمهای یه ببر وحشی برق میزد و در طرف دیگه سفیدی دندانهای تیز یه گرگ خودنمایی میکرد پشت سرش خرس بزرگی تیزش تیزشو نشون میداد و مار ترسناکی جلوی روش بین چمنها می خزید و به طرفش می اومد اما ایوانیچ سفارش پیرمرد را فراموش نکرد فوری دستشو داخل کیف کرد و هرچی که میتونست خورد نون بیرون آورد او نونا رو بین حیوانات پخش کرد اما کیف لحظه به لحظه می شد و کم کم ترس به جون شاهزاده میافتاد. بالاخره آخرین تکه نون هم خورده شد و در انده های گرسنه دور او حلقه زدند و به شکار لذیذشون خیره شدند. بعد مرد جوان خرگوش رو روی زمین گذاشت و به طرف اونها هل داد. به محض اینکه پاهای جونور کوچیک به زمین رسید، مثل تیری که از کمون رها شده باشه، در جنگل شروع به دویدن کرد و درنده ها هم با فاصله ای کم اونو تعقیب کردند. شاهزاده کاملا تنها موند او به انگشترش نگاه کرد و وقتی دید مثل همیشه میدرخشه مستقیم به راهش ادامه داد هنوز راه زیادی نرفته بود که چشمش به مرد بسیار عجیبی افتاد که به طرفش میومد قد مرد کوتاه و پاهاش کج بودند مثل خارپشت بدنش پوشیده از تیغ بود دو شیر هم در دو طرف مرد می اومدن که با ریش او به دو طرفش بسته شده بودن. او جلوی شاهزاده را گرفت و با صدای خشنی پرسید آیا تو همون کسی هستی که به محافظ من قضا داده ای؟ ایوانیچ به قدری تعجب کرده بود که نمیتونست جواب بده. اما آدم کچورو به صحبتش ادامه داد و گفت از محبت شما خیلی ممنونم و چطور میتونم لطف شما رو جبران کنم؟ ایوانیچ جواب داد تنها چیزی که میخوام اینه که بتونم صحیح و سالم از این جنگل عبور کنم. آدم کوچولو جواب داد من به شما کمک میکنم. برای امنیت بیشتر من یکی از شیرهامو برای محافظت به شما میدم. اما وقتی از جنگل خارج شدی و به قصری رسیدی که جز قلم من نیست اجازه بده شیر برگرده تا به دست دشمن کشته نشه. بعد از گفتن این حرفها ها او ریششو از کردن شیر باز کرد و به حیوان سفارش کرد با دقت از جوون مواظبت کنه. ایوانیچ همراه محافظش راه افتاد و با اینکه در بین راه با گرگ و کفترها، و پلنگ ها و درنده های زیادی روبرو شد اما همه اونها با دیدن محافظ شاهزاده با احترام عقب میرفتند و راه را باز میکردن. ایوانیچ با بیشترین سرعتی که پهاش قدرت داشتند، در طول جنگل جلو می رفت. اما ساعتها گذشت و هیچ نشونه از سکونت انسانها یا تکی از یه مزرعه ست به چشش نخورد بالاخره نزدیک عصر از انبوهی درختها کاسته شد و مرد تونست از میون شاخه های به هم پیچیده دشت بزرگی رو ببینه بعد از خروج از جنگل شیر توقف کرد و شاه ساده بعد از تشکر به خاطر مراقبت دوستانش. از او جدا شد هوا کاملا تاریک شده بود و ایوانیچ مجبور شد تا روشن شدن هوا صبر کنه او با ها و برگها برای خودش رخت خوابی درست کرد و با های خشک آتیشی روشن کرد و تا صبح روز بعد به خواب عمیقی فرو رفت پردای اون روز مرد جوون به راهش ادامه داد و به طرف قصر سفید و زیبایی که از دور میدرخشید رفت پس از یه ساعت ساختمون قصر رسید در باز کرد و وارد شد شاهزاده مدتی در راهروههای مرمری سرگردان شد تا اینکه بالاخره به یه پلکان سنگی رسید که در انتهای اون باغ زیبایی قرار داشت مرد جوون ناگهان فریادی از شادی کشید چود چشش به میلیتزا افتاد که میون عدهای دختر نشسته بود و اونها با گل موهاشو و تزئین به محض اینکه میلیتزا شاهزاده رو دید به طرفش دوید و بعد از اون که مرد جوان همه ماجرا را تعریف کرد اونها وارد قصر شدند و غذای خوبی خوردند بعد شاهزاده خانم همه درباریان و جمع کرد و ایوانیچ را به عنوان همسر آیندش معرفی کرد همه چیز خیلی زود تدارک دیده شد و جشن عروسی بزرگ و مجللی برگزار شد سه ما به خوبی و خوشی گذشت تا اینکه یه روز میلیتسا ای از خالش دریافت کرده بود که از او دعوت کرد به ملاقاتش بره. با اینکه که شهزاد خانم دلش نمیخواست از شوهرش دور بشه ولی دوست نداشت اون دعوت رو هم رد کنه و قول داد هفت روز دیگه برگرده. او با شاهزاده خداحافظی کرد و گفت قبل از رفتن من همه کلیت های قصر رو به تو میدم تا هر جا که خواستی برو فقط خواهش میکنم در آهنی کوچیکی که در برج شمالی هست و با هفت قفل و هفت پیچ بسته شده باز نکنید وگرنه هر دو توی دردسر میافتید ایوانیچ قول داد به دستورش عمل کنه و میلیتسا دوباره قول داد که هفت روز دیگه برمیگرده وقتی شاهزاده تنها شد وسواسی به جونش افتاد که بفهمه داخل اتاق برج چیه تا دو روز جلوی کنجکاویشو گرفت اما روز سوم دیگه نتونست طاقت بیاره مشعلی برداشت و به طرف برج رفت و ها رو یکی پس از دیگری باز کرد تا اینکه در آهنی کوچیک باز شد صحنه عجیبی جلوی چشاش قرار گرفت شاهزاده اتاق کوچیک پر از دودی رو دید که نور های آبی آتیش کمی اون رو روشن می کرد. روی آتیش ظرف بزرگی پر از غیر مذاب بود و مرد بدبختی با یه زنجیر آهنی به داخل ظرف بسته شده بود و از درد فریاد میکشید ایوانیچ از دیدن او وحشت کرد و پرسید چه می مرتکب شدی که باید اینطور شکنجه بشی مرد داخل ظرف گفت ولی خواهش میکنم اول کمی به من کمک کن و بعد همه چیزو و برات تعریف میکنم شاهزاده پرسید چیکار کنم مرد جواب داد کمی آب بیار اگه فقط چند قطره آب رو من بپاشی حالم بهتر میشه شاهزاده که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود بدون اینکه فکر کنه داره چیکار میکنه به حیاط رفت و کوزه ای رو پر از آب کرد و اون رو روی مرد داخل ظرف ریخت در یک لحظه صدای محیفی شنیده شد انگار همه ستونهای قصر فرو ریخت و ساختمون قصر با برجها و درها و پنجرها و ظرف غیر دور سر شاهزاده چرخیدند این وضعیت چند دقیقه ادامه پیدا کرد و بعد همه چیز ناپدید شد و ایوانیچ متوجه شد در سرزمینی دور افتاده و پوشیده از سنگ و صخره ایستاده. شاهزاده که تازه فهمیده بود بی توجهیش به دستور چه بلایی سرش آورده بر کنجکاوی خودش لعنت فرستاد او با ناامیدی اطراف و گشت و در حالی که داشت از قصه دق دغ میکرد، در فاصله نزدیک چشمش به نوری افتاد که از کلبه کوچیک و زشتی به بیرون میتابید. صاحب کلبه همون دوره گرد بدقیافه و خوشقل بود که به شاهزاده کیف نان و خرگوش داده بود او بدون اینکه ایوانیچ رو بشناسه در را به باز کرد و اجازه داد شب رو اونجا بمونه صبح روز بعد شاهزاده از سابقونه پرسید آیا کاری برای او سراخ داره؟ چون او به این اطراف آشنا نیست و پول کافی برای برگشتن به خونه نداره پیرمرد جواب داد پسرم هیچ کس در این سرزمین زندگی نمی‌کنه. خود من هم برای ادامه زندگی مجبورم به روستاهای دوردست برم و با این حال گاهی اوقات غذای کافی برای خوردن پیدا نمی کنم. اما اگه دوست داشته باشی که برای کراعا که جادوگر پیری هست از کنار ای که پایین پاین منجاری است مستقیم بالا برو. تقریبا سه ساعت بعد به یه تپه شنی خواهی رسید که در سمت چپ قرار داره و محل زندگی اونه. ایوانیچ از دورگرد پیرمرد تشکر کرد و به راه افتاد. پس از سه ساعت پیاده روی شاهزاده به یه دیوار سنگی خاکستری رسید. این دیوار قسمت پشتی یه ساختمون بود که برای مرد اصلا جالب نبود. اما وقتی او خودش رو جلوی ساختمون رسوند متوجه شد از پشت ساختمون هم بدتره چون جادوگر پیر با تعدادی سیخ برای خونش حسار درست کرده بود و روی هر کدوم از اونها جمجمه یه انسان را گذاشته بود. در میون این حصار بد منظره خانه کوچک سیاهی قرار داشت که فقط دو پنجره پوشیده از تار انکبود و یک در آهنی بد شکل داشت. و شاهزاده در زد صدای گوشخراش زنی به او اجازه داد که وارد بشه. ایوانیش در و باز کرد و متوجه شد، در آشپزخونه دود گرفته و کثیف ایستاده و پیرزن زشتی های لاغرش رو روی آتیش گرم کنه. شاهزاده خواهش کرد که اجازه بده خدمت کارش وارد بشه. پیرزن گفت که اتفاقاً به یه نفر احتیاج داره و او همون کسیه که به دردش میخوره وقتی ایوانیش پرسید که وظیفه‌اش چی و حقوقش چقدره، جادوگر از او خواست که دنبالش بره. اونها از میون راهروی باریک و نمناکی رد شدن و به اتاقی رسیدند که به عنوان استبل از اون استفاده میشد و دو اسب سیاه در اون مشغول علف خوردن بودند پیرزن گفت کار تو اینه که هر روز این مادیان و کرش رو برای چریدن به دشت ببری و مواظب باشی هیچ کدام از جلوی چشمت دور نشن اگه تو یه سال تمام از هر دوی اونها مراقبت کنی من هر چی بخوای به تو خواهم داد اما از طرف دیگه اگه یکی از اونها از دستت فرار کنه باید از جونت بگذری و چون سرت روی آخرین سیخ حسار خونم قرار خواهد گرفت سیخهایی که جلوی خونم دیدی با سر خدمتکارهایی تزیین شده که نتونستند دستور منو اجرا کنند ایوانیش فکر کرد هر اتفاقی بیفته و ازش از چیزی که هست بدتر نمیشه و شرط جادوگر رو قبول کرد. صبح روز بعد او اسبها را به دشت برد و بعد از ظهر اونها رو به استبل برگردوند. بدون اینکه یه لحظه از جلوی چشمش دور بشن. جا جلوی در اومد و با مهربانی اونو به داخل خونه برد و غذای خوبی براش درست کرد. این برنامه تا مدتی ادامه پیدا کرد. شاهزاده هر روز صبح زود اسبها رو به دشت می و بعد از زورها سهی و سالم برمیگردوند یه روز که او مشغول تماشای عصب ها بود به کنار ساحل رودخونه رفت ماهی بزرگی را دید که از روی بدشانسی روی زمین افتاده بود و به سختی تقلا میکرد تا خودش رو داخل آب بکشونه ایوانیچ دلش برای موجود بیچاره سوخت اونو برداشت و به رودخونه انداخت اما به محض اینکه ماهی وارد آب شد به طرف ساحل شنا کرد و از شاهزاده پرسید دوست مهربونم چطور میتونم محبت تو رو جبران کنم؟ شاهزاده جواب داد چیزی نمیخوام همین که تونستم به تو کمک کنم برام کافیه. ماهی گفت خواهشم اینه که این پولک رو از بدنم بکن و پیش خودت نگهدار. هر وقت که به کمک من احتیاج داشتی اونو داخل رودخونه بنداز من فوری به کمکت خواهم اومد. ایوانیچ خم شد و یه پولک از بدن ماهی قدر شناس کند و اون رو جای امنی گذاشت و به خونه برگشت. مدتی بعد، وقتی او مثل همیشه صبح زود، عصبها رو برای چرا برده بود، متوجه شد تعدادی پرنده کنار هم جمع شدند و سر صدای بلندی راه انداختند و دیوانوار به این طرف و اون طرف میرند. ایوانیچ با کنجکاوی به اونجا نزدیک شد و دید تعداد زیادی کلاق، بر سر یک اقاب ریختند و عقاب که خیلی بزرگ قدرتمند بود از خودش دفاع می کرد اما بالاخره خسته شد و مجبور شد تصدیم بشه. اما شاهزاده دلش برای پرنده بیچاره سوخت. شاخه بلندی برداشت و به طرف کلاخها پرتاب کرد. اونها که انتظار چنین حمله ای را نداشتند وحشت زده فرار کردند و فقط لاشه آنهایی که در نبرد کشته شده بودند به ماند. وقتی اقاب متوجه شد از دست مزاحمها ها راحت شده، یک پر از بال شکند و به شاهزاده داد و گفت دوست مهربونم، برای اینکه قدر شناسیم و به تو ثابت کنم، این پر رو به تو میدم و هر وقت که به کمک من احتیاج پیدا کردی، اون رو در هوا فوت کنم من فوری به کمکت خواهم اومد. ایوانید تشکر کرد و پر رو کنار پولک گذاشت و عصب ها رو به خونه برد. روز بعد او از همیشه دور رفت و به نزدیک مزرعه رسید که چمنهای زیادی اطرافش بود. تصمیم گرفت تا شب همونجا بمونه زیره یه درخت نشست. اما کمی بعد صدای ای از همون نزدیکی ها شنید و متوجه شد که یه روباه در تلهی که کشاورز کار گذاشته بود گیر افتاد. تلاش های بیچاره برای نجات خودش بی نتیجه بود. شاهزاده قلب به طرفش رفت و اونو از طله نجات روبا و روبا ازش تشکر کرد. دوتار مو از دوم پشمالوش کند و بهش داد و گفت به محض اینکه به کمک من احتیاج پیدا کردی این موها رو در آتش بنداز. من در خدمت گذاری حاضر خواهم شد. ایوانیچ موها رو کنار پر و پولک گذاشت و چون هوا کم کم تاریک می شد، با عجله از رو به خونه برگردوند. دوره خدمت به جادوگر رو به پایان بود. سه روز دیگه یه سال تمام میشد. و او میتونست پاداشش رو از پیرزن بگیره. در اولین شب از سه روز باقی مونده وقتی مرد به خونه برگشت و مشغول خوردن شام بود متوجه شد که پیرزن به داخل استعب رفت. شاهزاده مخفیانه اون رو تعقیب کرد تا ببینه میخواد چیکار کنه بعد گوشش به درش بون شنید که جادوگر بدجنس به اسبا میگه فردا صبح اونقدر صبر کنن تا ایوانیچ به خواب بره و بعد به رودخونه برند و اونجا پنهون بشن تا او دستور نداده بر نگردن بعد اونها رو تهدید کرد که اگه دستورش رو اجرا نکنن اونقدر شلاقش میزنن که تا خون از همه جای بدنشون جاری بشه وقتی ایوانیچ همه حرفا رو شنید به اتاقش برگشت و تصمیم گرفت فردا به هیچ قیمتی نگذاره خوابش ببره. روز بعد او مثل همیشه مادیان و کرش را به دشت برد اما تناوی دور گردنشون بسته و اون را محکم به دست گرفت. اما بعد از چند ساعت جادوی پیرزن اثر کرد و او بی اراده خوابش برد. مادیان و کرش هم طبق دستور فرار کردند. شاهزاده تا بعد از خواب بود و وقتی بیدار شد وحشت زده فهمید از پا ناپدید شدن او با ناامیدی خودش رو سرزنش میکرد و در خیال خود خودش روی سیخی کنار بقیه میدید. بعد ناگهان به یاد پولک ماهی افتاد که با پر اقا با موی روبا همیشه همراهش بود او اونا از جیبش بیرون آورد و به طرف رودخونه دوید و پولک را داخل آب انداخت یک دقیقه بعد ماهی قد خودش خودشو به نقطه از ساحل که ایوانیج ایستاده بود رسوند و گفت دوست عزیزم چه فرمایشی داری؟ شاهزاده جواب داد من دنبال یه مادیان و کرش میگردم اونو از دست من فرار کرده و در رودخونه خونه پنهان شدن اگه میخوای جون منو نجات بدی اونها رو به ساحل برگردون ماهی جواب داد یه لحظه صبر کن من و دوستام اونها رو بر میگردونیم بعد از گفتن این حرف ماهی به عمق خونه رفت و ناپدید شد خیلی زود صداهایی از زیر آب شنیده شد موجها خودشون رو به ساحل کوبیدند و آب کف کرد و هر دو اسب در حالی که از ترس میلرزیدند به ساحل پریدند ایوانیچ فوری سوار مادیان شد و افسار کره را به دست گرفت و با خوشحالی به طرف خونه تاخت جادوگر وقتی دید که شاهزاده اسبها را به خونه برگردون به سختی تونست عصبانیت خودش خودشو پنهان کنه. به محض اینکه شام ایوانیچ را آمادی کرد دوباره به صبر رفت. شاهزاده اون اونو تعقیب کرد. صدای اونو شنید که حیوون رو سرزنش میکرد که چرا درست پنهون نشدهین؟ او دستور داد فردا وقتی ایوانیچ به خواب رفت، خودشون رو در عبرها ها پنهون کنند و تا وقتی اون نگفته بیرون نیان اگه اسپا به دستور عمل نمیکردن، اونقدر کتک می‌خوردن تا از همه جای بدنشون خون جاری بشه روز بعد وقتی ایوانیچ اسپا رو به دشت برد و یه بار دیگه به خواب جادویی رفت اسپا فوری فرار کردند و در میان ابرهای قلیزی که قله کوه را پوشونده بود پنهان شدند وقتی شاهزاده بیدار شد و فهمید مادیان و کرش ناپدید شدند فوری به یاد اقاب افتاد و پر را از جیبش بیرون آورد و به هوا فوت کرد یه لحظه بعد پرنده از آسمون پایین اومد و پرسید از من چه کمکی برمیاد؟ شاهزاده جواب داد مادیان و کرو فرار کرده و در عبرها پنون شدن. اگر میخوای جونم رو نجات بدی هر دو رو به من برگردون. اقاب جواب دادی لحظه صبر کن من با کمک دوستام خیلی زود اونها رو پیش تو خواهیم فرستاد. بعد از گفتن این حرفها پرنده به هوا پرید و میون عبرها ناپدید شد. کمی بعد ایوانیچ متوجه شد چند عقاب بزرگ و کوچیک اصپا رو به طرفش میارن. او مادیان و کره رو گرفت و از عقاب تشکر کرد و خوشحال به خونه برگشت. جادوگر پیر با دیدن او از همیشه بیشتر خشمگین شد و بعد از حاضر کردن شام به استعب رفت و ایوانیچ صدای اونو میشنید که اصپا رو به خاطر اینکه خوب در عبرها پنهون نشده بودن سرزنش میکرد. بعد به اونها دستور داد روز بعد وقتی ایوانیچ خوابش برد در مرقدانیه پادشاه پنهون بشن و تا صداشون نکرده بیرون نیان بعد گفت اگه باز هم اشتباه کنن این بار حتما کتک خواهند خورد روز بعد شاهزاده مثل همیشه اسب‌ها رو به دشت برد کمی بعد وقتی مثل دو روز گذشته بی اختیار به خواب رفت مادیان و کورش فرار کردند و در مرقدونی سلطنتی پنهان شدند وقتی شاهزاده بیدار شد و فهمید از پا رفتن تصمیم گرفت از روباه کمک بگیره. به همین خاطر آتشی روشن کرد و موها رو داخل اون انداخت و چند لحظه بعد روباه خودش رو به اونجا رسوند و پرسید چه خدمتی از من ساخته؟ ایوانیت جواب داد میخوام بدونم مرغدونی سلطنتی کجاست؟ روباه جواب داد کمتر از یه ساعت با اینجا فاصله داره و به راه افتاد تا مسیر رو به شاهزاده نشون بده همانطور که اونها پیش می رفتن روبا از مرد پرسید که در مرقدونی پادشاه چی کار دارید؟ شاهزاده اتفاقی را که براش افتاده بود تعریف کرد و گفت که حتما باید مادیان و کرش رو برگردونه. روبا گفت کار راحتی نیست اما یه لحظه صبر کن من پیشنهادی دارم. تو جلوی در مرغدونی منتظر بمون. من از سوراخی که در دیوار هست وارد اونجا میشم و مرغا رو می ترسونم. مطمئنم اونها اونقدر سروصدا میکنن که نگهبانها بیدار میشن و برای سرکشی به مرغدونی میان وقتی اسب ها رو ببینن فکر میکنن اونها مزاحم مرغا شدند و فوری هر دو رو بیرون میندازن اون وقت تو میتونی مادیان و کرت رو بگیری و به خونه برگردی همه چیز همونطور که روباه پیش بینی کرده بود اتفاق افتاد شاهزاده با دیدن اسب پوری سوار مادیان شد و افسار کره رو گرفت و به طرف خونه تاخت. همونطور که با سرعت به طرف خونه میرفت، ناگهان مادیان به حرف اومد و گفت: تو اولین کسی هستی که تونستی کروعای جادوگر را شکست بدی. حالا میتونی به خاطر خدمت گذارید از او پاداش بخوای. اما اگه قول بدی که منو لوندی، پیشنهاد خوبی برات دارم که از قبول کردنش ضرر نخواهی کرد. شاهزاده قول داد هیچ وقت راز اون فاش نکنه. مادیان ادامه داد. هیچ چیز از جادوگر رو جز کره مرو چون نظیر او در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه و به هیچ قیمتی نمیشه اون خرید. چون این کره میتونه از یک طرف زمین در عرض چند دقیقه به طرف دیگه بره. البته کره از همه هیلهاش استفاده خواهد کرد تا تو رو از گرفتن کره منصرف کنه. و به تو خواهد گفت که کره من مریض و تنبله اما باور نکن و تقاضات پافشاری کن. ایبانیش خیلی دلش میخواست صاحب چنین اسبی بشه و به مادیان قول داد را انجام میده. این بار کوروها با مهبانی به استقبال مرد رفت و سفره رنگینی براش شید. وقتی شاهزاده غذاش خورد پیرزن پرسید که برای خدمت یک سالش چه دست مازی شاهزاده جواب داد فقط کوره مادیانو میخوام. نه بیشتر نه کمتر جادوگر از شنیدن تقاضای او خیلی تعجب کرد و گفت او باید چیز بهتری بخواد چون اون حیوان تنبل و دیوونه است یه چیش هم کور و به هیچ دردی نمیخوره اما تصمیم آزاده عوض نشد وقتی جادوگر پیر دید او خیلی اصرار داره گفت چون نمیخوام زیر قولم بزنم کره را به تو میدم اما چون میدونم تو کی هستی و چه هدفی داری برای توضیح میدم که چطور میتونی از این حیوان استفاده کنی؟ مردی که داخل ظرف غیر مذاب بود و تو آزادش کردی یه جادوگر قدرتمنده به خاطر بیفکری و حماقت تو میلیتزا اسیر او شد اون دختر رو همراه قصر و همه داری هاشت به جای دوری برده تو تنها کسی هستی که میتونی اونو بخشی و به قدر او از تو میترسه که برات جاسوس گذاشته و اونها همه کارهای تو رو به او گزارش میدن وقتی به او رسیدی مواظب باش یک کلمه هم حرف نزنی وگرنه دوستاش تو رو اسیر میکنن فوری ریش بلندش رو بگیر و اونو محکم به زمین بگو ایوانیچ از جادوگر پیر تشکر کرد و سوار کره اسبش شد پاهاش را به پهلوهای اون زد و او مثل برق و باد در هوا به حرکت در اومد هوا کم کم تاریک میشد که ایوانیچ چند نفر را در فاصله دورتر دید اونها خیلی زود به هم رسیدن. شاهزاده فهمید اونها جادوگر و دوستاش هستند که سوار بر کالسکاهایی که به چند جغ بسته شده بود در آسمون حرکت کنند. وقتی جادوگر با ایوانی روبرو شد فهمید که دیگه نمیتونه فرار کنه و با لحن دوستانه بهش گفت: سلام بر نجات دهنده مهربونم. اما شاهزاده بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه ریشه بلند جادوگر رو گرفت و اونو به زمین پرت کرد همان موقع کار اسب هم روی او پرید و اونقدر با سومش به او لگت زد تا اونو کشت و دیوانیش متوجه شد که یه بار دیگه در قصر همسرش ایستاده و میلیتسا هم به طرف او میاد از اون روز به بعد اونها دیگه به هیچ مشکلی بر و تا آخر عمرشون با خوبی و خوشی زندگی کردند